دارما از طریق قصد شما برای سروتمند شدن و موفقیت ابتدا از درون سپس از طریق باستابهایی حمایتتان می کند که زندگی به شما باز می گرداند. یوگا می که دو دنیایی که ما درون و بیرون سرگرم آن هستیم در واقع دو جنبه از یک واقعیت هستند سترا یا اندرز معروف یوگا می گوید هر گونه که باشی دنیا نیز همانگونه است. باستاب های بیرونی نتیجه قصد شماست واضح است که برخی افراد باستاب بسیار بهتری نسبت به دیگران دارند اگر می پول داشته باشید اما شرایط شما بسیار کمتر از حد ایدعال است، چیزی در این میان اشتباه است. آنچه شما می و آنچه به دست آورده اید همسون نیستند. مقصر کار ماست که در شکاف بین قصد و سمره زندگی می کند. لحظه ای درنگ کنید و موفقیت ها و شکست های خود را تا به این لحظه بازبینی کنید. هر زندگی حتی سربتمند و پرزرگ و برقترین آنها هر دو را دارد. کارما دلیل اتفاقات بد برای افراد خوب است. در جامعه سکولار مدرن این اشتباه به نظر می رسد. اتفاقات بد به دلائل مختلف روخ می دهد از جمله اتفاقات تصادفی که اصلا دلیلی ندارند اما آموزه کارما خوب و بد را نیز پوشش می دهد همچنین موتوریز که برعکس عمل می کند و ثروت و قدرت را برای افراد نالایق به ارمغان می آورد این باعث می شود که سازوکار کارمیک بسیار ناعادلانه به نظر برسد ذهن منطقی به هیچ وجه این گونه به مسائل نمینگرد. همیشه خطر سرزنش قربانی بیگناه یا نادیده گرفتن گناهان ثروتمندان و قدرتمندان وجود دارد. با این حال، تعالیم کارما عادلانه یا ناادلانه خواندن زندگی را توجیح نمی کند. کارما همان نتایج باقی مانده از کردار گذشته ماست. در سانسکریت، چرمه کارما به سادگی به معنای کردار به کار می‌رود. فضایی از رمز و راز کل مفهوم کارمای خوب و بد را احاطه کرده است. اما در زندگی روزانه ما کاملا به کارما وابسته هستیم زیرا همان علت و معلول است. اگر ارتباط بین علت و معلول وجود نداشت، هیچ اتفاقی پیش بینی نمی‌شد. اگر یخ ناگهان آتش بگیرد یا شکلات به طور غیرمنتظره ای طعم ماهی بدهد، دنیای عجیبی خواهد بود. هر زمان که مردم به کارمای خوب و کارمای بد اشاره می کنند، نکته ای که به طور کلی در ذهن دارند، خوش اقبالی یا بد اقبالی است. خوش اقبالی کسی در بخت آسمانی پول کلانی برنده می شود یا بد اقبالی وقتی اقتصاد سقوط می کند و فرد همه چیز خود را از دست می دهد. در سطح بالااتری از پیچیدگی کارما متضمن امر دیگری است. آنجا که اقبال تصادفی به نظر می رسد، کارما در طرح پیچیده علت و معلول تنیده می هنگامی که باعث میشوید اتفاقی روی دهد تاثیر آن اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد که کارما کردار شما چه خوب و چه بد را دنبال می کند و شما را در موقعیت هایی که میخواهید از آن فرار کنید به شکلی سرسختانه گیر می اندازد. آیا چنین چیزی وجود دارد؟ نیروی نامرعی که بر نیات ما حاکم است یا تقریبا بدون هیچ تقلائی پاداش های ناگهانی به ارمغان می آورد؟ این هرگز هدف پنهان تئوری کارما نبوده است که به معنای نیروی سرنوشت سازی باشد که خارج از کنترل ماست. کردار بیشک تحت کنترل ماست و تنها موضوعی که آموزه کارما اضافه می کند پیامدهای پیشبینی نشده است که مفهومی بیگانه یا عجیب و غریب نیست. اگر به هر کنشی که تا به حال انجام داده اید همراه با پیامدش بنگرید، مجموع کارمای شخصی شماست. آیا واقعا میتوان این محاسبه را انجام داد؟ نه، نه در جریان زندگی روزمره، زیرا اعمال بسیار زیادی با عواقب بسیار زیادی وجود دارد که نمی توان از راه دور محاسبه کرد. کارما تنها زمانی در زندگی روزمره عملی می شود که آن را به عواملی تقلیل دهید که می توانید تغییر دهید. همانطور که در شرایط فعلی اعمال می شود، کارما حاوی این گذینه هاست. آدات، باکنش ها و باستاب های خودکار، رفتار ناخداگاه، ویژگی های شخصیتی و، شایستگی، در دربردارندگ موهبتها و استعدادها همانطور که میبینید، الگوهای رفتاری زیادی وجود دارد که میتوانیم آنها را کارمیک بنامیم نه به این دلیل که ذاتن مزر هستند، بلکه به این دلیل که علت آشکاری ندارند کارما نمی‌تواند برای نابوق موتزارت یا کمبود توجه به کودک سالی دریدی تعیین کند که در مدرسه دوچار کشمکش و درگیری شده است یا حتی اینکه چرا برخی از مردم همیشه شاد و برخی دیگر همیشه ابوس هستند روانشناسی مدرن نیز نمی‌تواند پاسخ‌های درخور اعتمادی ارائه دهد تماجرات ذاتی مانند استعداد موسیقی ژنتیکی نیستند یک نابغه موسیقی مانند لئونارد برنشتاین حتی از یک خانواده موسیقیدان نیامده است و معروف است که از پدرش سام که از او میخواست محصولات مو بفروشد سرپیچی کرد. نابغه ها از هر نوع در خانواده های کاملا معمولی متولد شده اند. اما که هر مادری رفتار نوزاد خود را میشناسد، پیوند صمیمانه بین مادر و نوزاد او را در موقعیتی قرار می دهد که از همان روز اول حوییت و شخصیتش را ببیند و نشانه های آشکاری ظاهر می شود که با بزرگ شدن کودک به نتیجه می رسد. اگر کارما ما توضیحاتی ارائه نمی دهد، چگونه می تواند مفید باشد؟ کاربرد اصلی آن این است که به شما این انتخاب را می که ناآگاهانه یا آگاهانه زندگی کنید. به اولین دستبندی کارمیک فکر کنید عادت هیچ کس نمیتواند بیان کند که ترک عادت بد چقدر سخت است و گاهی اوقات کل جامعه درگیر یک عادت بد مثل همگیری چاقی می شود تقریبا هر کاری که با پرخوری مرتبط است کنترل نکردن وعده غذایی میون وعده خوردن فسفود چرب و شیرین و سبک زندگی بی‌تحرک خداگاه ایجاد می شود. این در ماهیت عادات است که ناخواست در ما ایجاد می شود تا زمانی که ما یا شخص دیگری متوجه آن شود و تا آن زمان احتمالاً این عادت عمیقا ریشه دوانده است پی در پی نشان داده است که در صد کمی از افرادی که رژیم دارند حدود دو درصد موفق می شوند تا دو دو دهم کیلوگرم وزن کم کنند و آن را به مدت دو سال حفظ کنند این آمار تأصف بار گواه بر قدرت رفتار ناخداگاه هست هیچ رمز و راز کارمایی در میان نیست با این حال این قدرت کارمایی را کاهش نمی دهد که سالها از طریق عادت ناخداگاه خودمان ایجاد می کنی. دانستن اینکه پرخوری می کنید یا اینکه در آینه چاختر به نظر می رسید به منظله آگاهی از راه حل نیست. شما فقط در سطح از مشکل آگاه می شوید. کارما با رفتن به سطح راه حل و یافتن وضوح بر مشکل قلبه می کند. در خصوص پرخوری، افراد انواع راه حلها را امتحان می کنند که عادت را از بین نمی برد، امدتن به این دلیل که انگاره های کارمایی ثابت هستند در حالی که میل به کم تر خوردن می آید و میرود بسته به این که فرد در هر لحظه چه احساسی دارد. اگر مشکل را دقیق تر بررسی کنید ادامه پیکار با خودتان بی است. این منجر به تزلزال، سرزنش خود و پیشرفت کم یا پس روی به سمت راه حل می شود. مهم نیست که چقدر با خود قسم می خورید که در باشگاه ورزشی عضو شوید. پرخوری معمولاً با یک یا دو روش حل می شود یا فرد یک روز از خواب بیدار می شود می گوید دیگر بس است و ناگهان متوجه می شود که بس پرخوری از بین رفته است. احتمال دیگر که بسیار تر است، این است که شخص تصمیم می تا هر لغمه غذایی را که در یک روز خورده است بشمارد و کادری مصرفی را در یک دفترچه یادداشت کند تا از تقلب و اشتباهات ناخداغاه جلوگیری کند. من از یک نمونه عادت رایش برای شرح موضوعی مهم استفاده کردم. کارما تنها زمانی تغییر می کند که راهی برای آگاهی بیشتر پیدا کنید. پیکار با هر نوع کارما به معنای پیکار با خود است. اگر تکانه های حشداردهنده درون شما میتوانستند به آتش بس برسند، خیلی وقت پیش این کار را میکردن. این را از تکانه هایی میدانید که قبلن به تعادل رسانده اید. هر مشکل شخصی جدی را در نظر بگیرید. فوبیا، نگرانی، خشم مهار نشدنی، حسادت، نبود اعتماد به نفس، خجالتی بودن، افسردگی، یک رابطه آزاردهنده، والدین بیاتفه. برخی از افراد زندگی خود را به شدت درگیر مشکل می کنند در حالی که دیگران با آن کنار می و ادامه می دهند. کارما اجتناب ناپذیر نیست، اگر گیر افتاده اید، راه حل آن همیشه از طریق خداگاهی در دسترس است. ترین مشکلات پولی که میتوان آنها را کار میکنامید، این مشکلات هستند. آزمون کارمای <سؤال> <سؤال> <آزمون> پول شما چیه؟ به هر کدوم از این گذینه ها در مقیاس یک تا ده پاسخ بدین جایی که یک یعنی مشکلی نیست 5 یعنی گاهی اوقات یه مشکلی وجود داره و 10 یه مشکل جدی وجود داره برای پرداخت چکهای ماهانه خودتون مشکل دارین به کارت اعتباری دارین گرفتار وام های بانکی یا دانشجوی طولانی مدت هستین به شما نسبت به درامدتون بسیار زیاده. به طور جدی برای بازنشستگی برنامه ریزی نمی کنین. معمولا از روی انگیزه در تجمبلات ولخرجی می کنین. شما تمایلات تجملاتی زیادی داریم که درآمدتون به اونها نمی رسه. سر پول با همسر یا شریک زندگی خودتون بحث می کنین. نگران آینده مالی خودتون هستین. نمیتونین راهی برای خروج از مشکلات مالی فعیلی خودتون پیدا کنین. ماه به ماه با حقوق خودتون زندگی می فقط امرار معاش می کنین. هزینه هایی رو پیشبینی می کنین که نمیتونین از احده اونها بر بیاین مثل پرداخت هزینه تحصیل کودک یا کمک به زندگی یکی از اعضای سالمنده خانواده. هرگز نتونستین پول پسنداز کنین. یادگیری در خصوص امور مالی و سرمایه فراتر از شماست یا حتی برای آزمودن اون اهمیتی قائل نیستید. از پرداخت مالیات خودتون عقب افتادین. وقتی مشاوره مالی دریافت می از اون استفاده نمی کنین. پول و موضوعی حروم می دونید. برای چیزهایی خرج می که بعدن پشیمون می با روش هزینه کردن شریک زندگیتون مخالف هستین. از دستمزد کم خودتون از محل کار ناراضی هستین. در پایان امتیازات خودتون رو جمع کنین و یه نمره کال به خودتون بدین. ارزیابی امتیاز شما اگر از نظر مالی مشکلی ندارید و بیکموکاست هستید در هر 20 گزینه به خود امتیاز 1 بدهید که احتمالاً این تورنِیست بیکموکاست بودن به همان اندازه محتمل است که بدترین امتیاز ممکن را کسب کنید یعنی اینکه در هر 20 گزینه به خودتان نمره 10 بدهید بیشتر مردم به طور متوسط حدود 20 ضرب در 5 گزینه یعنی 100 هستند به عبارت دیگر اگر هر یک از گذینه ها را با وضوح بررسی کنید معمولا وضعیت مالی شما نگران کننده است برخی اتفاق ها به خوبی پیش میروند در حالی که برخی دیگر اینطور نیستند نکته واقعا یک جمعه عددی نیست بلکه گذینه ها یا است که از هفت تا ده نمره می دهید می توانید به این نکته ها به عنوان نقاط خطر نگاه کنید، در این صورت فقط به نگرانی خود اضافه می کنید و مانند قبل ادامه می دهید. از سوی دیگر، هر نکته ای که به عنوان یک نگرانی طبقه بندی می حاوی یک گزینه است و گزینه تقریبا همیشه یکی از جنبه های آگاهی گسترده است. فقط چیزی که شما از آن آگاه هستید برای تغییر آماده می شود، چیزی برای ترس از آگاهی بیشتر وجود ندارد شما همین حالا هم از مشکلات خود در سطح مشکل آگاه هستید تغییری که باید انجام دهید این است که در سطح راه حل از آنها آگاه شوید در نهایت شما باید استفاده از پول را صرفاً به عنوان یک جبران در نظر بگیرید آن هنگام که مسیر واقعی یعنی آگاهی سعادتمند به روی مردم بسته می شود آنها پول را به عنوان راهی به سوی شادی بر خود آگاه بودن با وعده پول دار شدن یکسان نیست اما خداگاهی کمک می کند تا پول را در چشمنداز مناسبی قرار دهید به طوری که مفید واقع شود اما اگر می یک زندگی رضایت بخش داشته باشید بیش از حد وسوسه نشوید وقتی به این شناخت برسید، بسیاری از مسائل مالی خود به خود حل می شوند. ای برادر، تو همان اندیشهی، ما بقی خود استخان و ریشهی، مولانا.